المیزان سرفی اثانی دو میزان سرفی دو در اون میزان سرفی خوندیم که میزان بر اساس موضوع تنظیم میشه هاش و حروفش در این درس میخواد یه چیزهایی رو یه نقطه های جدید رو بده چون در این درس ابدال و اعلال به قلب و اعلال به سکون و اعلال به حذف هست. قواعد فرق میکنند دو گروه همسله رو آورده در گروه اول ابدال و اعلال به قلب و اعلال به سکون رخ داده میزان سرجاش هست. بر اساس اصل کلمه بر اساس اصل موجود ولی در امثله گروه دوم نه حروفی از موضوع حصف هستند در میزان هم اون حرف حصف هست امشه لیه روح اول رو بخونیم سامه فعله بینید سامه ایلال بق... اه... توش ابدال روخ داده توش ایلال به قلب روخ داده سامه بوده شده سامه اما میزانش فعله هست سامه فعله در میزان تغییر رخ نداده استطبره اینجا هم ابدال رخ داده در استبره قبلا خود که اگر فاعل کلمه باشد به باب افتال برده شود تای باب افتال تبدیل به تا شود است تبره می شود اس با تا ولی میزانش هست افتعله تا سر جاش هست تغییر نکرده یقومو یفعولو در یقومو که موضوع هست حرکت از این الفعل رفته به فاعل فل، از حرف عله رفته به حرف صحیح و ساکر یقومو که شده یقومو ولی میزانش همون یفعولو هست دیگه میزان یقومو نمیگیم یا یا هست نمیگیم که میزان یقوم یا فعلو هست بلکه بر اصل یقومو میزان یقومو هست در مرام همچنین دیگه مرام ما رام الان فؤل حرکت داره قلم رخ داده ولی بیزارش همون مفعال هست مفعال نیست مفعال هست بر اساس اصل مرواب مهدی مفعول هست مهدی اسم مفعوله مهدی اسم مفعوله بر وزن مفعوله ولی در مهدی اعلال رخ داده یا در یا ادغام شده اما مفعول که میزانش از باقی مونده امثلی گروه دوم قوم قوم فعل امر هست از قام یکوم و قوم در اصل هست قوم در اصل هست چی؟ قوم ولی به علت التقای ساکره واب شده شده قوم ببینیم که میزانش هست فال. اسعو، اس عاو، آنول فیل لابول فیل در اس عاو شده در بیزانه حس فس افعو حس فست، لام حس فست در اس لام لام حس حس. همانطور که در فول عین حس شده بود. یارموده یافعوده. لا فعل حسب است در میزان له حسب است تون هبتون عيله الفاعل حسب است در عيله نا به حسب است زنتون عيله تون فاعل فعل حسب است خودش در قواعد میگه القواعد اذا حصل في الكلمه ابدال او اعلال بالقلب او التسكين زمانی که در کلمه ابدال یا اعلال اعلال, اعلال به قلب یا اعلال به تسکیل رخ بده وزن کلمتو على حسب, حسب اصلها میشه کلمه بر حسب اصلش ما در مثله گروه اول صابه بر وزن چهست؟ فعلا دیگه میزانش فعله هست و لا گرم و به این عبدال و اعلال نگاهی کرده نمی شود نگاه نمی که در موضوع اعلال یا ابدال رخ داده پس در میزان هم بیاریش نه اینجا توجهی به اعلال و ابدال کردن نمی و وزن میشه بر حسب اصلش سامه اصلش بوده سوامه پس میزانش هست فعاله استبره که باطای دست دار نوشته میشه اصلش بوده افتعاله میزانش هست افتعاله یکومو یکومو می ده که میزانش هست یفعولو مرام مروم مفعل مفعول مهدوی مهدی که در اسبوده مهدوی که واب دریا ادغام شده ولی بر اساس اصلش که محدودی بوده میزانش مفعول است. این شد از امساله گروه اول قاعده بیست دوم کتاب اگر خوفه من الكلمة بعد مو اما حس فرق میکنه. اگر حس فروخ بده در میزان هم دیگه این مورد توجه قرار بیه اذا خضیفه من کلمتی بعض و ها زمانی که از کلمه بعضی از حرفهاش حصف شوند ابدال و اعلان نه حصف زمانی که حصف شود از کلمه بعضی از حروفهاش خضیفه نظیر و ذالک من المیزان نظیر همون حرف از میزان هم حصف میشه یعنی اگر از کلمه فا الفیل حصف میشه در میزان فا حصف میشه اگر ائل فعل هست بشه در میزان این هست بشه اگر لام هست بشه در میزان لام هست بشه در قام یا یقوم قوم ائل هست شده در میزان فل ائل فعل هست در یرموده لام الفعل هست در یفعلن لام الفعل هست در اس هست دیگه در مول جمع مذکر یفعلون لا در هیبتون وحب بوده و یه بود هست شده در میزان رو میبینیم که فعال فعل هست شده است به جای فعلتون شده ایلتون به جای فعل پس این شده است میزان سرفی دو و برای این درسه بعدی.